داستان شاهزاده خرچنگ ماهیگیری بود که هیچ وقت نمیتونست اندازه کافی ماهی بگیره. یه روز که داشت تور ماهیگیریشو بالا میکشید، اونقدر سنگین بود که نمیتونست از پسش بر بیاد. وقتی که با زحمت رو بالا کشید و توی قایقش آورد، دید که خرچنگ بزرگی رو شکار کرده. خیلی خوشحال شد با خودش گفت عجب سیدی کردم کاشکی بتونم امروز واسه بچههام آرد ذرت بخرم خرچنگو گذاش رو دوششو با خوشحالی برگشت بخونه به همسرش گفت امروز میتونم به بازار برم و براتون آرد ذرت بخرم اون روز ماهگی خرچنگ رو برد به قصر پادشاه بعدم به پادشاه گفت علا حضرت امادم ببینم لطف میکنید تا این خرچنگ ازم بخرین چون من پول کافی ندارم تا برای بچه هم آرده زر رست بخرم. پادشاه گفت آخه من با این خرچنگ چیکار کنم؟ نمیتونی ببری یه جایی دیگه تا بفروشیش؟ همون موقع دختر پادشاه اومد توی اتاق. وقتی خرچنگ دید؟ گفت وای چه خرچنگ قشنگی پدر جون خواهش میکنم اینو برای من بخر. میخوام بذارمش کنار شاه ماهیا و ماهیای تلایی. بندازمش تو حوزی که توی باغ قصره. پادشاه چون دخترش خیلی دوست داشت. خرچنگو خرید و به دخترش داد. دختر پادشاه از ماهی ها خیلی خوشش میومد. ساعت ها مینش از کنار حوزی که توی باغ قصر بود، شاه ماهیا و ماهی های رو که اونجا شنا می کردن تماشا میکرد. مرد ماهیگیر در ازای خرچنگ یکیف کیف پر از سکه طلا گرفت تا برای یک ماه برای بچه هاش رد ذرت بخره. شاهزاده خانوم هر روز کارش این بود که کنار حوز بره و به خرچنگ و ماهیا نگاه کنه از تماشا کردن خرچنگ سیر نمیشد هیچ وقت از حوض کنار نمیرفت. تموم کارای اونو یاد گرفته بود حتی میدونست خرچنگ موقع زب به مدت سه چهار ساعت غیبش میزنه و معلوم نیست کجا میره دختر پادشاه یه روز که داشت خرچنگ و نگاه میکرد یه صدایی شنید رفت جلوی پنجره صدایی یه دوره گرد بود دختر پادشاه یکیف سکه یه طلا برای صدقه برای مرد دورگرد از پنجره پایین انداخت. اما از اونجایی که مرد دورگرد زیاد آدم تند و فرزی نبود نتونست کیسه رو بگیره. کیسه افتاد توی برکه آب. دورگرد رفت تو برکه تا اون رو پیداش کنه. شروع کرد به شنا کردن توی برکه. برکه از طریق یه قنات زیرزمینی میخورد به حوض قصر پادشاه. بعدش هم که معلوم نبود تا کجا میرفت. دورگرد همونطور که زیرابی شنا کرد، رسید به یه حوض قشنگ وسط یه تالار بزرگ زیرزمینی که با پرده پوشیده شده بود. تازه یه میز پر از غذا اونجا بود. دورگرد از حوز اومد بیرون و رفت پشت پرده قایم شد. موقع ظهر بود. یه پری زیبا که پشت یه خرچنگ نشسته بود از آب بیرون اومد. پری با اون خرچنگ اومدم توی تالار. پری زیبا چوبی تو دستش بود که یه ضربه آروم به بدن خرچنگ زد. همون لحظه خرچنگ تبدیل شد به یه جوون خوشگل و زیبا. وقتی جوون نشست پشت میز، پری دوباره چوبش تکون داد. همون لحظه همه یه پر از غذاهای خوشمزه شده بودن. بطری پر از نوشیدنی شده بود. و خلاصه. پری و خرچنگ که تبدیل شده بود به جوون زیبا پشت میز نشستند و شروع کردند به خوردن غذاها و نوشیدنی ها. بعد از اینکه غذا خوردنشون تموم شد، دوباره پرید چوبش شد تخون داد و جوون تبدیل به خرچنگ شد. پری دوباره سوار خرچنگ شد و با هم رفتن زیر آب. دورگر که از پشت پرده داشت همه این صحنه ها رو میدید، چوب کرد. از پشت پرده بیرون اومد و شیر زد توی حوض. شنا کرد و شنا کرد تا سر از حوض پادشاه در آورد. دختر پادشاه که مثل همیشه داشت ماهیاش نگاه میکرد مرد دورگرد دید که سرش از آب بیرون آورده. بهش گفت شما اینجا چی کار میکنی؟ دورگردم بهش گفت شاه خانم تو رو خدا ساکت باشید. باید یه چیزایی رو بهتون بگم. خیلی چیزای عجیب غریبی بودن. مرد دورگرد بیرون اومد و ماجرا رو برای دختر پادشاه تعریف کرد. دختر پادشاه هم گفت: حالا میفهمم که این خرچنگه کجا قایمش میزنه. حالا که اینطوریه، فردا ظهر باید با هم بریم تا منم ببینم که اونجا چه اتفاقی داره میافته. فردا موقع ظهر دختر پادشاه و مرد دورگرد شناکنان از راه قنات زیرزمینی از حوز رسیدند به تالار. هر دوشون پشت پرده قایم شدند. بعد از چند ساعت سرکنده پری که سوار بر خرچنگ بود پیدا شد. پری مثل هر روز دوباره با چوبش یه ضربه به بدن خرچنگ زد و اون خرچنگ تبدیل شد به یه جوان زیبا. بعدم نشستن پشت میز و با هم غذا خوردن. شاهزاد خانوم با دیدن این صحنهها، ها اگرچه قبلا خرچنگرو خیلی دوست داشت ولی حالا اون جوونی رو که از خرچنگ بیرون اومده بود رو بیشتر دوست داشت. همونجا احساس کرد که عاشقش شده. و وقتی که دید پوست خرچنگ کنارشه و خالیه، بدون اینکه کسی متوجه بشه رفت توی پوست خرچنگ وقتی که غذا خوردن پری و پسر جوون تموم شد پسر جوون خواست که دوباره بره تو پوست خرچنگ اما دید که یه دختر خوشگل توی پوسته یواشکی بهش گفت چی کار داری میکنی؟ اگه پری بفهمه تو اینجا قایم شدی حتما هر دوتام اونو از بین میبره دختر پادشاه هم با صدای خیلی آروم بهش گفت من میخوام تلسم تو رو بهش کنم. بگو باید چیکار کنم. تسر جوون بهش گفت ممکن نیست. برای نجات من به دختری احتیاجه که آشقم باشه و حاضر باشه جونشم برام فدا کنه. شاهزاد خانم گفت خب من همون دخترم هم دیگه. همینطور که داشتن این حرفا رو میزدن پری سوار به پشت خرچنگ شد و خرچنگ هم مثل هر روز پری رو به طرف دریای آزاد برد. وقتی که پری رو به دریای آزاد رسوند دوباره به حوز برگشت. و بعد هم برای شاهزاده داشت تعریف میکرد که برای نجاتش چیکار باید بکنه. خرچنگ به شاهزاده گفت باید بری روی سخره تو ساحل دریا و شروع کنی به ساز زدن و آواز بوندن. پری دیوونه ساز و آواز و برای این که بهت گوش کنه از دریا میاد بیرون و بهت میگه بنواز نواز ای دختر زیبا که من خیلی دوست دارم و تو بهش جواب میدی معلومه که من مینوازم اما کافیه که شما اون گلی که روی سرتون رو به من بدید وقتی که اون گل رو گرفتی من آزاد میشم چون اون کل زندگی منه خرچنگه برگشت به حوز و دختر پادشاه از پوستش در اومد. مرد دورگرد هم به نوبه خودش دوباره شنا کرد و اومد بیرون. چون شاهزاده خانم رو پیدا نکرده بود. فکر میکرد نکنه بلای سرش اومده باشه. اما دختر جوون از حوض بیرون اومد و از مرد دورگرد هم تشکر کرد و کمکش رو هم حسابی ترافی کرد. شاهزاده خانم رفت پیش پدرش و بهش گفت که میخواد ساز و آواز یاد بگیره. پادشاه هم که همیشه به حرفای دخترش گوش میداد، فرستاد دنبال بهترین نوازنده ها و خواننده ها تا بهش درس بدن. شاهزاده خانم خیلی زود آواز خوندن رو یاد گرفت. بعدش هم به پدرش گفت میخوام برم روی یه صخره تو ساحل دریا و ویولون بزنم. پادشاه تعجب کرد به دخترش گفت مگه خول شدی دخترم؟ اما طبق معمول چون به حرفای دخترش گوش میکرد اونو با هشت تا ندیمه سفید پوش به ساحل دریا فرستاد تا برای خودش اونجا نوازندگی کنه. دختر پادشاه نشست روی یه سخره و هشت تا ندیمهش هم روی هشت تا صخره سنگ نشستن و منتظر شدن تا ببینن دختر پادشاه چجوری ویولون می نوازه. دختر پادشاه شروع کرد به ویولون زدن. با صدای زیبای ویولون، پری از امواج دریا بیرون اومد گفت: چقدر قشنگ میتونی ساز بزنی. بنواز که من صدای این سازو خیلی دوست دارم. دختر پادشاه گفت: باشه. ولی شما کافیه که اون گلی که روی سرتون رو به من بدید. من دیوونه گلم. پریام گفت: باشه من اینو به شما میدم. به شرطی که بتونید برید اونو اونجایی که میندازم برش داریم شاهزادهم گفت باشه میرم و برش میدارم. شاهزاده خانم شروع کرد به ساز زدن و خوندن آواز. وقتی که تموم شد به پری گفت حالا گلو به هم میدیم؟ پری هم گلو از روی سرش در و پرتابش کرد به دورترین جای ممکنی که میتونست اون دور دورا وسط دریا شاهزاده خانم گونو میدید میدید که روی امواج دریا داره بالا و پایین میره پرید توی آب و شروع کرد به شنا کردن هشت ندیمه هم با تورای سفیدشون پشت سرش ایستاده بودند و نگاه میکردند فریاد میزدند شاهزاده خانم شاهزاده خانم اما شاهزاد خانم شنا میکرد و شنا میکرد. وسط امواج دریا گم شده بود. می اومد روی آب و دوباره می زیر آب. شک برش داشته بود. با خودش فکر میکرد نکنه نتونم گلر رو بگیرم. ولی یهو یه موج بزرگی اومد و گل و گذاشت توی دست شاهزاده. وقتی که شاهزاده خانم گل و گرفت توی دستاش صدایی شنید. اون صدا بهش گفت تو زندگی منو به هم برگردوندی پس باید همسر من بشی حالا نترس من کمکت میکنم که به طرف ساحل شنا کنی اما نباید به کسی حرفی بزنی حتی به پدرت بعدم اون صدا به شاهزاده خانوم گفت من باید برم پدر و مادرمو خبر کنم ظرف 24 ساعت میام خواستگاریت شاهزاده خانوم که دیگه نفسی براش نمونده بود همونطور که خرچنگی داشت بهش کمک میکرد که به طرف ساحل دریا شنا کنه فقط جواب داد باشه فهمیدم من به کسی چیزی نمیگم. شهستاد خانم برگشت خونه و به پادشاه گفت که خیلی بهش خوش گذشته و دیگه هم چیزی نگفت. روز بعد صدای تبل و شیپور و صدای سمه اسباب گوش میرسید. یه خدمتکار اومد دم در قصد خودش رو خودشو معرفی کرد و گفت که پسر پادشاه اون اجازه شرفیابی میخواد. شاهزاده طبق رسم و رسوم شاهزاده خانم رو از پادشاه حاسگاری کرد و بعدم تمام ماجره رو برای پادشاه تعریف کرد. پادشاه یکم داراحت شد چون از هیچی خبر نداشت. دخترش رو صدا کرد و دخترم با عجله اومد پیش پادشاه. وقتی که شاهزاده رو دید، خودش رو فوری تو بغل شاهزاده انداخت و گفت این همسر منه. پادشاه با دیدن این صحنه فهمید که دیگه چاره ای نداره. جز اینکه هر چی زودتر تر عروسی دخترش رو باید فراهم کنه. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمینهای سحرآمیز سفر کنین؟ جایی که ها و کوتوله ها زندگی میکنند <متحد> کانال هزار افسان همونیه که دنبالش <متحد> جایی که داستان های افسانه ای و اسطوره سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه کانال تلگرامی هزار افسان سفری به دنیای خیال و رویا سفری